دل گفت مرا علم ردن تعلیم است، تحلیم بکن اگر تو را دست است گفتم که الف کپت دگر هیچ مگو، در خانه اگر کس است یک کرف بس است. چون آمدنم به من نبود روز نخست، وین این زبطن از میست درست، برخیز و میان ببند، ای ساقی چست، کندوها جهان به می فروها هم شست. با چند زنم به روی خشت، بیزار شدم زبود پرستان کنشت، خیام که گفت دوزخی خواهد بود، گه رفت به دوزخ و گهندر به بهشت. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحنه چمن روی دلبروز خوش است، از دی که گذشت هرچگوی خوش نیست، خوش باش و زدهی مگو که امروز خوش است.